سحیفه معرفت شرح دعای هفته سحیفه سجادیه توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی جلسه دوازدهم اسم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صل الله علی نبینا و آله تیبین الطاهرین المعصومین لاسی ما بقیت الله فی الارزین در دعای 17ام از صحیفه سجادیه امام علیه السلام ضمن معرفی خطرات شیطان راه های مبارزه با او را هم به ما معرفی کردند که از جمله این راهها بلکه اهم این پناه بردن به پروردگار و خود را در آغوش حضرت حق قرار دادن و بنده محب حضرت حق شدن است در ادامه مطالب به اینجا می رسیم که حضرت ارزه می دارن اللهم صل علی محمد و عالی و امتعنا من خدا به مثل زلالته همون گونه که قبلا ارز کردم در دعاهای صحیفه من جمله همین دعا هر چند فرازی را که حضرت بیان می یک بار سلوات رو باز تکرار می نوعا در ابتدای یک موضوع معین در ابتدای یک بحث خاصی که حضرت می در قالب دعامت ره کنند سلوات رو هم ذکر توضیحی قبلا در این جهت دادم که این توجه به است قدردانی از نعمت است که ما را با خدا آشنا کرده اند سلوات بر رسول رسولی که از طرف خدا آمد تا مرا با خدا آشنا کند و آل رسول که بعد از رسول راه او را از دست برد انحرافات حفظ کردند و این حقیقت رو برای ما نگه داشتند که دیگه در مورد سلوات اجازه بدید به اون مقداری که بحث شد فعلا اکتفا کنیم رد بشیم و امتعنا منال خدا ای خدا از تو میخوام منو بهرمند بگردانیم تمتع برای من بهره برای من حاصل شود من الهدا از هدایت به مثل زلالتیهی در برابر زلالت و گمراهی شیطان دو کلمه هدایت و زلالت در مقابل همن که اگر معادلش رو در فارسی بخوام بکار ببرم راهنمایی گمراهی ارشاد نشون دادن مسیر در راه بودن بیراهه بودن گمراه بودن و در بیراهه رفتن ما هر هدفی را که در زندگی انتخاب کردیم حالا قبل از اینکه این بحث مطرح شود آیا این هدف بررسی شده که صحیح است یا غلط آیا هدف درستی رو انتخاب کردیم یا نه؟ این بحث خاصی است که الان مورد بحث ما نیست ولی ما هدفی رو که برگزیده ایم راهی که ما رو به هدف میرساند این راه میشه راه و اون عاملی که ما رو در این راه قرار میده میشه هادی فعل او میشه هدایت اما اگر هدف من در یک نقطه نیست، بنده به جای این که به سمت اون هدف برم یه راه دیگری رو طی کنم این میشه بیراهه من میشم گمراه و اون کسی که اصرار دارد من رو در اون مسیر و جاده و حرکت بیاندازد او میشه مذل و کار او میشه زلالت هدف در فرهنگ دینی با تمامی های قرآنی روایی عقلی که برای ما جزء مسلمات است و در این بحث فعلا ما جای بحثشو نداریم پربردگار است خداست هست لغای خدا قرب پربردگار به سوی خدا در حال حرکت بودن به فرموده قرآن کریم یا حال انسان، انک كَادِهُنْ الی ربک كَدْهَنْ فملاقی. وقتی هدف خدا شد راهی که ما رو به خدا برسونیم انبیا آمدن این راه رو به ما نشون بدن اولیاء و امامان و جانشینان انبیا تلاش دارن این راه دست برده نشه آلوده نشه و ما سالم تو این راه به جلو بریم آلمان راستین دین انسان دوستان غمخار مذهبی اصرار دارن این راه رو به مردم نشون بدن پس کار اونها میشه هدایت در مرحله اول حادی پروردگار است، به ذات که راه را به انسان نشون میدهد. همون گونه که خداوند میفرماید در قرآن، انا هدایناه است ما راه را نشون میدیم، هداینا هدایت میکنیم. یا در جای دیگر قرآن میفرماید، انا علینا للهدا بر ماست که هدایت کنیم. یعنی خدایی خدا، عظمت پروردگار، لطف اناهیت او. دوست داشتن بندگان همه با همه در ذات اقدس الهی اینگونه است که این صفت تجلی میکند لذا میگیم یا هادی ای ذاتی که هدایت میکنی ای وجودی که راه رو به ما نشون میدید در هدایت پروردگار کسانی را قرار میدهد که آنها بیان اون صفت هدایت حضرت حق را در این عالم جلوه بدن که میشن انبیا و اولیا و آنانی که از انبیا و امامان تبعیت میکنن پس هدایت راه را نشون دادن است و طبیعی است اگر ما در راه قرار نگیریم به هدف نمیرسیم نقطه مقابل هدایت میشه زلالت همون طوری که خدا و انبیا و اولیا راه را نشون میدن که انسانها در مسیر حق حرکت کنن شیطان و عوامل شیطانی میکوشند که انسان ها را از این راه بدر کنند لذا شیطان میشود مذل از راه بیرون رفتن گمراه شدن بیراه شدن در مسیر نبودن میشه زلالت امام سجاد علیه السلام اینجا به این نکته اشاره میکنند و امته نام الهدا بهرهمند گردان مرا از هدایت یعنی اگر هدایت هست هادیان هستند راه را نشون میدهند ولی من نمیخوام بهره بشم گر گدا کاهل بوبد تقصیر صاحب خانه چیست اگر من نخوام بهره ببرم و استفاده کنم همونطوری که در ولایت پروردگار عرض کردم الله ولی الذين اگه من مؤمن نشم از ولایت او بهره مند نمیشم لزاخ یعنی در این دعا این نکته رو به ما میآموزد که ما زمینه بهره مندی از این هدایت رو در خودمون ایجاد کنیم یک هادی از حادیان الهی میشه امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام وقتی بعد از پیغمبر بیست و پنج سال خانه می نشیند اون همه فریاد می‌زند سلونی قبل آن تفقدونی از من بپرسید قبل از اینکه از میان شما برم اما انقدر بی بهره می‌مانند زمینه استفاده رو در خودشون ایجاد نمی‌کنن که ایشون منزوی می‌شن و در خانه می‌نشینن یک مستشرق اروپایی در کتابش می‌نویسد افسوس زمانی که امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه و السلام فرمود سلونی سلونی قبل ان به جای اون که قلم به دست علی بدن بیل به دست علی دادن آیا امیر المؤمنین در اون شرائط باید کشاورزی میکرد یا در آن شرائط باید درس میداد تعلیم میداد مردم رو هدایت میکرد ولی وقتی مردم قدردان نیستن و نمیخوان بهره ببرن است که اون اثری که این هدایت و هادی باید ایجاد کنه ایجاد نمیشه امام علیه السلام توجه میدن و امتعنا من الهدا به مثل زلالتیهی خب شیطان کارش گمراهیه کسانی که از گمراهی شیطان استفاده میکنن یعنی تمتع بهرهشون بهره شیطنتی طبیعی است وقتی بهره شیطنتی از شیطان بردن خب گمراه میشن میگه خدایا یه عده هستند که دارن گوش به حرف شیطان میدن بهره میبرن از زلالت شیطان ولی من از تو اینو میخوام به من این توفیق رو بری و امتعنا من الله خدا به مثل زلالت همون طوری که زلالت شیطان رو بعضی بهره میبرم بهره از زلالت چی میشه؟ است، گمراهیست، است، از هدف دور شدن و به مقصد نرسیدن ولی من از تو اینو میخوام که من بتوانم بهره از هدایت ببرم یعنی با این دعا توجه داشته بشیم هدایت هست، زلالت هم هست همون طور که حادیان الهی آمدن فریاد میزنن دشمنان بشریت و گمراه کنندگان هم در مقابل حادیان الهی قد علم می کنن زلالت و گمراهی خلقلا می این نکته باید با هم دیگه توجه داشته باشیم این دوتا همیشه هست رگ رگ است این آب شیرین آبشور. اینا در مقابل هم متاع کفر و دین بی بیمشتری نیست گروه این گروه اون پسندن همیشه در مقابل انبیا شیطان و شیاطین قد علم کردن اگر موساست فرعون مانع اوست اگر حضرت ابراهیم است فرا... نمرو در مقابلش قرار داره اگر نوح پیامبره اون همه جهالت و نادانی مردم زمان در مقابلش قرار داره شیطان اده ای را تحریک میکند تا بیراهی ها را بگیرند و با کمال تأسف بهره شیطنتی هم میبرند پس یک امام علیه السلام داره به ما توجه میده فکر نکنید که اگر شما در این راه میخوایهید قرار بگیرید گفتید خدا راه کاملا هموار هادیان هستند عامل لغزش نیست شما در مقابل عامل لغزش تکلیفی ندارید نه اینجوری نیست لذا قرآن کریم میفرماید ان الذین قالوا ربنا الله کسانی که میگن رب ما خداست پس هدف و قبول کردن خدا رو پذیرفتن ولی به محضی که گفتن قالو ربون الله تمام شد به مقصد میرسن ادامش میده سممستقامو باید استقامت کنن باید بیستن باید تحمل داشته باشن در اثر این استقامت بعد از قالو ربنا الله تتنزلو علیهم الملائکه الله تخافو ولا لا تهزنو و ابشرو بالجنت کنتم تا تق... اه... کنتم تو عدون. تو عدون این وعده‌ای که به شما داده شده بر مبنای اون استقامت هست که بعد از اون عقیده بعد از اون پذیرش اولیه شما نشون دادید حافظ شاید با توجه به این آیه و این نوع مباحث این عبارت این شعر رو میگه الا یا ایها الساقی ادرک اسن و نابلها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها اگر در مرحله اول ادعای عشق و ادعای پذیرش هدف الهی و حب الهی این آسان نمود اما افتاد مشکلها یعنی شیطان نمیذاره. عوامل لغزش در کنار ما قرار میگیره و اینا ممکنه هی بخواد ما رو فریب بده ما رو از راه به کنه ما رو کنار بزنه ما اگر در مقابل اون عامل ایستادگی نشون ندیم به این نتیجهی که باید برسیم نمی‌رسیم. لذا امام علیه السلام میگه خدایا حالا که این دو تا عامل هست مطاع کفر دین بی مشتری نیست هر دوتا هم کفر از هم دین هر دو هم مشتری دارن منو از اونایی قرار بده من مشتری هدایت بشم خریدار و طالب و بحرمنده از هدایت بشم. اگر خریدار ایمان شدم خریدار شرک و کفر دیگه نمیشم. خب این یه درسیست برای ما یه مقدار به خودمون مراجعه کنیم. ما خریدار چی هستیم؟ زندگی روزمره ما و اعمال و رفتار ما میتونین نشون بده. اگر در جمعی ما رو دعوت میکنن که سخن از دین و خدا و معنوییت رقبت به رفتن ندارم. در جمعی ما را دعوت میکنند که سخت از آلودگیها لهو و لعب و لقو است آمادگی نشون میدم پس من خریدار کدوم هستم امام سجاد داره به من میگه خدایا کمکم کن من مند از این طرف بشم وقتی قرآن کریم در سوره مؤمنون میفرماید قد افلح المؤمنون تا به ون جایی که ان اللقو معرزون رستگاری اگر از آن مؤمن است مؤمن کسی است که از لقب اعراض کند ولی وقتی من در زندگی خودم دقیق میشم اگر صحنههایی در تلویزیون ها و فیلمهایی در سینماها و کتابها و مجلات و جراید و همچنین مثلا در سایت ها و اینترنت و غیره چیزایی است که اگر پای اونها بشینم نگاه به اونها بکنم در من زمینه ازلال شیطانی فراهم می شود و من خریدار اونها هستم پس من در خط شیطان دارم راحت در حرکت می کنم. اما امام علیه السلام می فرماید اینجوری دعا کنید بگید خدای از تو میخوام و امتعنا منال خدا به مثل زلالت همونطوری که شیطان با زلالتش خریدار داره که اون خریدار داره بهره میبره نه نه من میخوام اونجوری خریدار باشم ولی نه خریدار زلالت خریدار چی؟ خریدار هدایت باشم پس به خودمون مراجعه کنیم به هدایت چقدر ما علاقه نشون میدیم خریدار هر چیزی به اندازه نیازی که نسبت به اون چیز احساس میکند جدیت نشون میده به مثال دقت کنید بنده مثلا فرض کنید تو خونم نون ندارم خودم و اطرافیان و منم گرستنم الان خریدار نونم میرم نونوایی اولی که نزدیک منزلمونه میگه نون ندارم خریدارم از سر همینطوری تفنن و تفرج نرفتم نونی بخرم من احتیاج دارم این احتیاج رو حس میکنم نونوایی دوم میرم میگه ندارم خسته نمیشم نونوایی سوم میرم میرم دنبالش تا نون تهیه کنم برگردم چون خریدارم من خریدار هدایت هستم یا نه اگر خریدار هدایتم باید بگم دست از طلب ندارم تا کام دل برایت. یا جان رسد به جانان یا جان زتند رها آید چرا مثلا دوتا کتاب میخونم خسته میشم چارت جلسه میرم خسته میشم دو جلسه سوال میکنم بحث میکنم خسته میشم من به اندازه نیازم به نون نیاز به هدایت و اساس نشدم امام سجاد در این دعا میگه خدایا منو برخوردار کن بهرهمند کن طالب باشم برم بگیرم بجویم از هدایت بحرمند بشم همونطوری که زلالت شیطان برای بعضی ها خریدارش بودند و دنبارش رفتند و وقت در ادامش نکته بسیار ظریفی رو حضرت توجه میدن که انشاءالله جلسه بعدی پی میگیریم و سلام علیکم